عزیزان به کلاس دیگری از دانش کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. در این کلاس ها ما بزرگترین کتاب دنیا یعنی کلام خدا کتاب مقدس رو بررسی می کنیم. ما سفری رو در کتاب مقدس از عهد قدیم شروع کردیم و حالا به پایان عهد جدید نزدیک میشیم و اگه به تازگی به ما ملحق شدید خوش اومدیم. هرگز برای شروع بررسی کتاب مقدس دیر نیست. در درس امروز معلم ما بررسی کتاب یعقوب رو شروع میکنه. رساله عملی که ادهی به اون کتاب امثال عهد جدید میگن. این جنگنده داییکی بود که به زانو شطوری معروف بود. چرا سخنان اون؟ این همه سخته. بیاید به معلممون ملحق بشیم تا جواب این سوالات و منبع و مراحل نجات رو از اون بشنویم. رساله یعقوب بسیار کاربردی هست. ما کاری رو که واقعاً معتقدیم انجام میدیم بقیه فقط حرفهای مذهبی هست و کسی به حرفهای مذهبی نیاز نداره مرد مقدسی که این رساله رو نوشته حرفهای مذهبی ننوشته بلکه اونها چکیده خوبی از این رساله هستند رساله یعقوب اینطور شروع میشه یعقوب بنده خدا و بنده عیسی مسیح خداوند به دوازده طایفه اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده اند سلام و درود میفرستد ای برادران من هرگاه دو چهار آزمونشات گوناگون میشوید بی نهایت شاد باشید چون میدانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود بردباری شما بیشتر می شود و وقتی بردباری شما کامل شود شما انسانهای های کامل و بینقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت میبخشد و انسان را سرزنش نمی کند آن را به او خواهد داد اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می شود چون این شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت چون شخص دو دل در تمام کارهای خود ناپایدار است خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید. زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت ضمن بررسی عهد جدید حالا به یکی از رسالات مورد علاقه من در تحت جدید رسیدیم رساله یعقوب رساله یعقوب از این جهت مورد علاقه من هست که شدیداً کاربردیه. من معتقدم که این نوع مطالعه کتاب مقدس که واقعا به ما کمک میکنه به خدا جلال میده از اون که تاکید من در تعلیم کتاب مقدس بر کاربرد هست به این دلیل رساله یعقوب رو بیشتر دوست دارم به رسالات عمومی از این جهت عمومی گفته شده چون که نویسندگان مختلفی اون رو نوشتند و اونها خطاب به گروههای عموم مردم هستند نه گروههای خاصی از مردم رسالات پولس خطاب به افراد یا گروه های خاصی از مردم نوشته شده مثل افسوسیان قرنتیان و کولوسیان اما در مورد رسالات عمومی اینطور نیست این کتابها مانند کتاب ابرانیان و رساله یعقوب خطاب به تمام مردم نوشته شده این نامه‌ها توسط یک نویسنده نوشته نشدند بلکه نویسندگان مختلفی مثل یعقوب، یوحنا، پتروس و یهودا اونها رو نوشتند برخی از مردم رساله یعقوب رو کتاب امثال عهد جدید مینامند کتاب امثال عملی ترین کتاب در عهد قدیم هست. به این دلیل این کتاب محبوب بسیاری از مردم در عهد قدیم هست. تمام محتوای کتاب امثال مربوط به حکمت، حکمت عملی در بازار و تمامی روابط اجتماعی هست. بسیاری بر این باورند که کتاب یعقوب هم مثل کتاب امثال هست. بسیاری این کتاب را مانند امثال میدانند از این جهت که تعالیم این نامه مانند کتاب امثال به شکل گنجینه ناپیوسته از حکمت هست و بحث دنبالهداری رو ادامه نمیده یا موضوعی اساسی نداره من کاملا به این معتقد نیستم اما خیلی ها هستن که به کتاب یعقوب از این دیدگاه نگاه می کنن. چیز دیگری که باید در مورد رساله یعقوب ملاحظه کنید این هست که رساله یعقوب مانند تفسیری همگام با تعالیم عیسی مسیح است. مخصوصا در مورد موعظه سر کوه کسی که این نامه کوچک رو می نویسه به وضوح از تعالیم ایسا اشباه شده. شما میتونید در این نامه که به اون رساله یعقوب میگیم حداقل ده مثال پیدا کنید که در اون تعالیم عیسی به طور خاص به کار گرفته شده. تعالیمی از ایسا وجود دارن مخصوصا هایی که از مععزه سر کوه گرفته شده اند که میتوان اونها رو در رساله یعقوب دید یا حتی در کنار هر کدوم از آیات رساله یعقوب قرار داد. مثلا این اظهار عیسی را از موعظه سر کوه در انجیل متی باب 6 آیه یک در نظر بگیرید او میگه مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید در این رساله یعقوب همین مورد تاکید قرار گرفته بعد این تعلیم از عیسی در متی باب 5 آیه 20 هست که میگه بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد. این یقینا یکی از قویترین ترین تأکیدات در رساله یعقوب هست و در راستای این تعلیم عیسی در متا پنج چهل و و یعقوب یک چهار هست. پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل هست. شما عملا میتونید آیاتی مثل این رو در سراسر رساله یعقوب ببینید چون به نظر میرسه که یعقوب بارها و بارها در این پنج باب کوتاه میگه به هر چیزی که واقعا ایمان دارید انجام بدید. بقیه فقط حرف مذهبی و ورد هستند. و کسی به ورد نیازی نداره. به نظر میرسه تأکید او بر این هست و یقینا او این تأکید رو از عیسی گرفته. وقتی ملاحظه کنید که نویسنده این کتاب کیه؟ تعجب نخواهید کرد که چرا او از تعالیم ایسا اشباه شده؟ بسیاری از محققین معتقدند که یعقوبی که این رساله رو نوشته برادر ناتنی زمینی ایسا بوده. اگر شما با داستانهای کتاب مقدس آشنا باشید که تا حالا حتما آشنا شدید میدونید که یعقوب برادر زمینی ایسا وقتی او سه سال در روی زمین برای عموم مردم خدمت میکرد به او ایمان نداشت از آنجایی که آشکارا یعقوب یکی از اون برادران بود که به عیسی در طول سه سال خدمتش ایمان نداشت خودتون رو جای یعقوب بذارید و ملاحظه کنید که او با چه چالشی مواجه بوده فرض کنید که شما برادری داشتید که تمام عمرتون رو با او زندگی کرده بودید و یک روز او برمیگشت و به شما میگفت میخوام چیزی بهت بگم تو فکر میکنی که من فقط برادر تو هستم اما من چیزی بیشتر از اون هستم من امانوئل هستم من خدا با ما هست هستم من مسیحا هستم من خدای جسم پوشیده هستم آیا اگر او برادر شما بود و یا تمام عمر هم اتاقی شما بود چون این مشکلی نداشتید؟ آشکار بود که مشکل یعقوب این بود یعقوب نمیتونست تا بعد از قیام عیسی از مردگان این ادعای او رو بپذیره. بعد از قیام عیسی در اول قرنتیان پانزده گفته شده که او به شاگردان ظاهر شد و در یک لحظه برای پانصد نفر از برادران هم ظاهر شد. او به طور خاص برای پتروس ظاهر شد و برای یعقوب ظاهر شد. همین یعقوب برادرش. محققین معتقدند که این ظهور بعد از قیام عیسی به برادرش بود که باعث تبدیل او شد. جالبه که ملاحظه که بعد از اینکه یعقوب تبدیل شد، بلافاصله به عنوان رهبر یکی از کلیساهای بزرگ منصوب شد. در اعمال 15 شرح داده شده که یعقوب کسی بود که ریاست شورای اورشلیم را به عهده گرفت. یادتون هست که رسولان به خاطر خدمت پولس برای اولین بار برای شورای کلیسا گرد هم اومدن. در اولین شورای کلیسا رسولان تصمیم گرفتند که ایمانداران یهودی می در یهودیت خودشون باقی بمونند. اونها مجبور نبودند از یهودی بودن خودشون دست بکشن چون که از مسیحی یهودی پیروی میکردند. اما غیر یهودیان که هرگز یهودی نبودند مجبور نبودند که در پرستش ها و سنت های الهیشون یهودی شوند. یعقوبی که ریاست شورا رو به عهده داشت، همین یعقوب بود. این همون یعقوبی هست که پولس در نامش به غلاطیان به او اشاره میکنه و میگه زمانی که برای اولین بار به اورشلیم بازگشت سه نفر در کلیسای اورشلیم بودند که مانند ستونهای کلیسا بودند یوحنا، پتروس و همین یعقوب پولس به این یعقوب اشاره میکنه شما نمیتونید از تعجب خود داری کنید که چطور این یعقوب که حتی جز دوازده شاگرد نبود توانست به سرعت تبدیل به ستونی برای کلیسای عهد جدید بشه توضیحش اینه که قبل از اینکه یعقوب تبدیل بشه، یک یهودی بسیار بسیار متعهد و مؤمن بود. بنابراین وقتی تبدیل شد، او بسیار فراتر از اون بود که جمعیت یهودی نتوانند او را به عنوان یک مقام والا به حساب نیارند و پیروان یهودی مسیح به او احترام نذارن. بعد از تبدیلش او به سرعت روش کرد و رهبر شد. این یعقوب قبل از تبدیلش اونقدر مؤمن بود که به او مرد شطور زانو می گفتن. چون او زمان زیادی رو بر روی زانوهاش دعا میکرد و زانوهاش مانند زانوی شطور پینه بسته بود فکر می کنید او چقدر زمان صرف کرد تا این عنوان رو به او بدن این یعقوب شهید شد نوشته های تاریخی میگویند که او را از بالای معبد پایین انداختند و بعد توسط کاهن اعظم با چماخ کشته شد میگویند وقتی این اتفاق افتاد جمعیت یهودی بر علیه کاهن اعظم تقیان کردند و او را از کار بر کنار کردند. وقتی امپراتور روم تیتوس به اورشلیم حمله کرد و آنجا رو تماماً ویران کرد، بسیاری از یهودیان وفادار که پیروان عیسی مسیح نشده بودند، معتقد بودند که ویرانی اورشلیم توسط امپراتور تیتوس در سال 70 میلادی داوری خدا بر اورشلیم بود به خاطر شهادت این مرد مقدس. یعنی یعقوب، اگرچه رساله او در انتهای عهد قدیم قرار گرفته، این الزامن به این معنی نیست که این رساله بعد از سایر کتاب های عهد جدید نوشته شده. یادتونه که من بارها گفته‌ام که کتاب مقدس بر اساس تاریخ نگارششان در کتاب مقدس قرار نگرفتن. اونها بر اساس محتویاتشون در جایی که هستن قرار دارن. چون رساله یعقوب رساله عمومی هست، به همراه دیگر رسالات عمومی در انتهای عهد جدید قرار گرفته اما اگر قرار بود کتاب‌های عهد جدید را بر اساس تاریخ نگارششان تدوین می‌کردید این رساله باید در صدر همه کتابها میومد. اکثر محققین معتقدند این کتاب قدیمیترین کتاب از مجموعه عهد جدید هست حتی پیش از اناجیل نوشته شده وقتی که محتوای رساله یعقوب را می‌خوانید کسانی هستند که معتقدن یعقوب سعی می کرده که پولس رو توجیه کنه. اونها میگن که پولس واقعا با عادل شمرده شدگی توسط ایمان به قدرت واقعی رسیده نه با اعمالش. یعقوب در باب دوم رسالهش معکدن به ما میگه که ما تنها با ایمان عادل شمرده نمیشیم، بلکه با ایمان به همراه اعمال. از اونجایی که رساله یعقوب در انتهای عهد جدید قرار گرفته، این افراد معتقدن که یعقوب آخرین کلمات اون بحث رو از پولس گرفته اما وقتی یعقوب این نامه رو می نوشت هیچ کس در مورد قلاتیان یا رومیان یا هیچ کدام از نامه های پولوس چیزی نشنیده بود رسالات پولس بعد از رسالات یعقوب نوشته شده بسیاری از محققین معتقدند که نامه یعقوب آنقدر قدیمی هست که در موقع نوشتن آن هیچ غیر یهودی در کلیسا نبوده به این دلیل که رساله یعقوب به نظر بسیاری یهودی و شریعتی به نظر میرسه. تأکید بر عملی بودن نامه هست. اگرچه در رساله یعقوب استدلالی مانند استدلال که در رسالات پولس به رومیان و استدلالی که در نامه ابرانیان هست وجود نداره، اما موضوعاتی هست. موضوعات بسیار مشخصی که یعقوب در نامهش به اونها میپردازه. دوازده آیه باب اول خلاصه یه رساله یعقوب هست. ما دیدیم که یعقوب مردیه که چندان علاقه ای به ظاهر مسائل نداره. علاقه ای به این نداره که چطور چیزها ظاهر میشن، بلکه بیشتر به سرچشمه چیزها و به اساس و واقعیت اونها علاقمنده. وقتی که یعقوب این تاکیدات رو با مادرمیون میذاره، او بسیار شبیه عیسی هست عیسی به ظاهر بیرونی یا به انسان بیرونی تاکید نداشت. عیسی به مسائل درونی و به انسان درونی تاکید کرد. عیسی به رفتار ما و به انگیزه های ما که منجر به عمل می شد تاکید داشت اساس رساله یعقوب به موازات همان ارزش هایی هست که عیسی بر اونها تاکید داشت در باب اول یعقوب درباره منابع و مراحل نجات با ما صحبت میکنه اولا یعقوب درباره منابع و مراحل چیزی با ما صحبت میکنه که به اون طوفان ها میگیم همه ما در زندگی طوفانهایی داشتیم یعقوب شروع میکنه و میگه وقتی انواع امتحانات در زندگی شما پیش میاد برادران من اونها رو بلا و فاجعه به حساب نیارید بلکه به عنوان یک دوست اونها رو بپذیرید چیزی که یعقوب میگه اینه که همه ما طوفانهایی داریم یعنی اینکه همه ما مشکلاتی داریم و از امتحاناتی عبور میکنیم. ملاحظه کنید در تمام رسالات عمومی خواه ابرانیان یا یعقوب یا پتروس یوحنا یا یهودا وقتی اون رسولان این رسالات عمومی رو به مردم تحت ستم می‌نوشتن در ابتدای نامه‌هاشون همیشه کلمه ای قبل از رنج می‌نوشتن اونها همیشه کلمات نصیحت و تسلی برای مردم رنج دیده می‌نوشتن اونها نیاز به دیدگاههایی در مورد رنج‌هاشون داشتند. تمامی این رسالات عمومی به رنجهای ایمانداران مسیح اشاره میکنن. در این سخنان آغازین یعقوب بسیار زیبا به رنجها اشاره میکنه یعقوب به شما میگه اون رو شادی به حساب بیارید وقتی این امتحانات رو تجربه میکنید ای برادران من هرگاه که دوچار آزمایشات گوناگون میشوید بینهایت شاد باشید مردم نمیتونند اون پیغام رو دریافت کنند چون یعقوب در اون نقطه در مورد وسوسه گناه صحبت نمیکنه او در آیات بعدی از این صحبت میکنه. یعقوب درباره آزمایشات، مشکلات و امتحانات صحبت میکنه. یکی از ترجمه ها این طور میگه و من اون رو خیلی دوست دارم. این امتحانات رو به عنوان یک مزاحم تلقی نکنید، بلکه به عنوان یک دوست با آنها خوشامد بگید. در اکثر جاهای دنیا و در سراسر تاریخ کلیسا مردم بسیار واقعی را بودند. اونها میدونند و میدونستند که امتحانات بخشی از زندگی هست. چون اونها امتحانات زیاد و طوفان‌های زیادی در زندگی داشتن در سراسر دنیای امروز مردم از این دیدگاه به زندگی نگاه می‌کنند زندگی سخته گاهی ما نمی‌تونیم این رو اقرار کنیم که مشکل داریم چون اساس افکار ما این هست که قرار نیست ما مشکلاتی داشته باشیم مشکلات بخشی واقعی از زندگی ما هستند چیزی که مردها رو از پسرها جدا می‌کنه این نیست که آیا مشکلاتی دارن یا نه بلکه نحوه برخورد اونها با مشکلاتشون هست. من این دیدگاه رو در مورد تحمل رنج میدونم که بسیار واقع بینانه هست. این رسالات عمومی همه از این حالت دارند همه معتقدن که رنج بخشی از زندگی هست. در آیات نخستین یعقوب به ما میگه از رنجها یا امتحانات متنفر نباشید. چنان که گویی اونها بلا یا مصیبتی برای شما هستن. به امتحانات خودتون مارند یک دوست خوشامد آمد بگید چون اونها میتونن شخصیت شما رو شکل بدن و شما رو به بلوغ روحانی برسونه. نحوه برداشت یعقوب از رنج ها رو ملاحظه کنید او به ما میگه اونها اینطور کار میکنند. هدف از آزمایش ایمان این هست که شما رو به اعتماد به ایمان برسونه اگر اجازه بدید که این آزمایش شما رو به اعتماد برسونه بعد از اون پیروزی در ایمان رو تجربه خواهید کرد یعقوب اون رو اینطور برای ما توضیح میده وقتی طوفانی در زندگیتون دارید و آزمایش میشید اکثر اوقات آزمایش شما رو به جایی میرسونه که نمیدونید چیکار باید بکنید وقتی به اون نقطه میرسید و میفهمید که شما به حکمتی فراتر از خودتون نیازمندید بعد یعقوب میگه اجازه بدید این آزمایش ایمان شما رو به اعتماد در ایمان برسونه وقتی شما فاقد حکمت هستید از خدا بخواهید از پدر آسمانیتون بخواهید و او خوشحال میشه که از حکمت خودش به شما بده. او حکمت خودش رو بر شما قرار میده و بعد اگر شما در حین آزمایش بر اساس اون حکمت عمل کنید، تاج حیات رو به دست خواهید آورد. من مثلا فرض میکنم که دخترم از دانشکده به من تلفن میزنه و به من میگه که نمیدونه چیکار بکنه. روز شنبه امتحانات شروع میشه و او مریضه، هپاتیت داره، از پله ها پایین افتاده، کمرش شکسته و بعد از این که همه اینها رو به من میگه شروع میکنه به گریه کردن و میگه پدر من نمیدونم چیکار کنم رو راست بهتون بگم من شدیدا تحت تاثیر قرار میگیرم که دخترم در این موقعیت از من حکمت میخواد که او میدونه میتونه بر حکمت من تکیه بکنه و به پدرش بگه من نمیدونم چیکار کنم تو به من بگو چیکار کنم آیا فکر میکنید من به او میگم خودت فکری به حال خودت بکن من وقت ندارم که به مشکلات تو برسم فکر میکنید من چنین چیزی به او میگم هر پدری از اینکه فرزندش بر حکمت او تکیه میکنه شدیداً تحت تاثیر قرار میگیره. به عنوان پدر ما خوشحال میشیم که حکمتمون رو با فرزندانمون در میون بذاریم و مشکلات اونها رو با هم حل کنیم. چیزی که یعقوب در نخستین باب نامش میگه دقیقا همینه. وقتی تا جای آزمایش میشید که نمیدونید چیکار باید بکنید، رو به پدر آسمانیتون بکنید و به او بگید که نمیدونید چیکار باید بکنید. پولس هم مینویسه وقتی پر از روح هستید از اعماق قلبتون فریاد میزنید ابا یعنی ای پدر من پس میتونید به او برگردید و به پدر آسمانیتون بگید که به شما حکمت بده شما میتونید به پدر آسمانیتون بگید من نمیدونم چیکار باید بکنم من به حکمت نیاز دارم یعقوب قول میده که اگر این کار رو بکنید خدا حکمتش رو با شما تقسیم میکنه و بعد اگر بر اساس اون حکمت عمل بکنید خواهید فهمید که اون کار میکنه. و شما تاج حیات رو میگیرید یعنی آزمایش ایمان منتهی به اعتماد بر ایمان میشه و اعتماد بر ایمان منتهی به پیروزی در ایمان یا تاج حیات میشه اما بعد درست در وسط این مد جایی که یعقوب با ما از منشه و مراحل طوفان صحبت میکنه او با ما در مورد چیز دیگری صحبت میکنه او در ادامه باب یک میگه کسی که گرفتار وسوسه میشود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است چون خداوند از بدی مبرا است و کسی را به وسوسه نمیاندازد یعقوب علاقمند منابع مسائل هست منشه وسوسه برای گناه خدا نیست یعقوب به طور مشروح توضیح میده که منبع طوفان میتونه از خدا باشه حداقل میتونه با اجازه خدا باشه به قول یعقوب خدا به شما حکمت خواهد داد تا با این طوفان مواجه بشید خدا میتونه خیلی کارها با منابع و مراحل اون طوفان بکنه وقتی خدا به شما فیض میبخشه که با هایتان مواجه بشید میتونه شما را به لحاظ روحانی رشد بده اما وقتی یعقوب به موضوع وسوسه یه ارتکاب گناه میرسه او میگه موضوع دیگری هم در این باره هست یعقوب به وضوح به ما میگه که خدا رو به خاطر وسوسه شدن برای گناه مقصر ندونید او حتی به ما میگه وسوسه شدن برای گناه رو به گردن شیطان هم نندازی یعقوب بررسی کاملی از منابع و مراحل گناه رو به ما ارائه میده در باب اول یعقوب او به ما میگه که وقتی برای ارتکاب گناه وسوسه میشیم اون وسوسه از خدا نمیاد چون خدا با بدی وسوسه نمی کنه و خدا هیچ کس رو برای گناه وسوسه نمی کنه البته بلافاصله سوالی پیش میاد اگر خدا نمیتونه احتمالاً ما رو برای گناه وسوسه کنه پس چرا ما در دعای شاگردان در متأش دعا می کنیم، ما را در وسوسه نیاور. اگه یه لحظه به اون فکر کنید وقتی خداوند اون دعا رو به ما میده ما اینطور برای خداوند دعا میکنیم. خداوند تو منو هدایت کن چون میدونم اگر تو منو هدایت کنی و من از راه تو پیروی کنم به وسوسه نخواهم افتاد. اگر خداوند گامهای شما رو هدایت بکنه او شما رو تا جایی هدایت نمیکنه که با وسوسه مواجه بشی. فلسفه کتاب مقدس در مورد وسوسه شدن در گناه همیشه همین هست. قبل از اینکه به گناه بیفتید، از وسوسه فرار کنید. ما این رو در اول قرنتیان 6 هجده و اول تیموتاوس 6 یازده و دوم دو 2-22 میتونیم ببینیم. آیا یادتون پولس در اول قرنتیان ده در رابطه با وسوسه چی می نویسه؟ او میگه وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید هایی است که برای تمام مردم پیش می آید اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمیگذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسهی خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید اگه آیه بعدی رو بخونید میفهمید فهمید که راه فرار چی هست آیه بعدی اول قرنتیان ده چارده می گه بنابراین فرار کنید فرار کردن راه نجات از گناه است. کتاب مقدس میگه شما ستونهای قدرتمند نیستید. شما نباید به طرف وسوسه هجوم ببرید. قرار نیست که شما به پیشواز وسوسه برید و بعد بگید خدایا راه گریز از این چیه. تو گفتی که من هرگز بیش از حد توانم وسوسه نخواهم شد. این فلسفه ای نیست که کتاب مقدس برای وسوسه ارائه میکنه. وقتی عیسی در باغ دعا میکرد از رسولانش خواست که با او دعا کنند. اما اونها خوابیده بودند. یک بار که اونها در خواب بودن، او به اونها گفت آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دوچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. در این باب نخست یعقوب، اون منابع و مراحل وسوسه به گناه رو به زیبایی برای ما توصیف میکنه وقتی کسی گناه میکنه وقتی سقوط میکنه چطور این اتفاق می افته؟ در باب اول یعقوب با ما در مورد مراحل و زرافت گناه صحبت میکنه. او به ما چیزی رو میده که میتونیم به اون کالبوت شکافی گناه بگیم. وقتی او این کار رو میکنه به ما میگه در این مورد اشتباه نکنیم. وسوسه گناه از جانب خدا نمیاد. اون حتی از طرف شیطان هم نمیاد. وسوسه به گناه از درون شما میاد. به این ترتیب که چیزی رو میبینید و اون رو میخواهید میتونیم به این هرس یا تمه بگیم. بعد به این چیزی که دیدید فکر می کنید، به چیزی که تمع می کنید فکر می کنید و وقتی به چیزی که تمع کردید فکر می کنید، اون اشتیاق در شما قوت می گیره و اون چیزی رو که شما می کتاب مقدس به اون شهوت می مراحلش اینها هستند. اول چیزی رو می بعد هواست می کنید. اگر کاری در مورد هواستون نکنید، روزی با وسوسه مواجه خواهید شد. بنابه گفته یعقوب شما هنوز مرتکب به نشدید. وسوسه گناه نیست. کتاب ابرانیان به ما گفته که خداوند ما هم وسوسه شد، اما هرگز گناه نکرد. وسوسه شدن گناه نیست، اما اکثر اوقات وسوسه منتهی به ارتکاب گناه میشه. قلب حقیقت این متن این هست: آیا میخواهید گناه کنید یا نمیخواهید گناه کنید؟ اگر نمیخواهید گناه کنید، پس گناه را از سرچشمهش متوقف کنید. یا در نبرد بر علیه گناه زمانی پیروز بشید که هنوز در مرحله نگاه و هوس هست و هنوز تبدیل به شهوت نشده مثل این هست که شهوت شما مانند آهن ربایی قدرتمنده و طمع شما مانند یک تکه آهن اگر واقعا نمی گناه کنید باید اون آهن ربایی رو که طمع شما رو جذب میکنه و شما رو به طرف اون میکشه بشکنید شما نمیتونید از نگاه اول اجتناب کنید اما میتونید از نگاه های بعدی پرهیز کنید اجازه ندید هوس شما تبدیل به تمع بشه. بعد نامه یعقوب به ما میگه همیشه به خاطر داشته باشید که عاقبت و نتیجه گناه مرگ است. منظور یعقوب از مرگ همونطور که پولس هم در رومیان شیش گفته مزد گناه موت هست این هست که عواقب گناه همیشه مخرب هست و چنان مرگی هست که همیشه به دنبال ارتکاب به گناه میاد. در باب اول یعقوب به ما تعلیم میده که چطور آزمایش ایمان منتهی به اعتماد ایمان میشه و اون ما رو به پیروزی در ایمان میرسونه؟ او همینطور میگه که چطور خدا میتونه ما رو در اون امتحانات رشد بده؟ چیز دیگری که یعقوب میگه این مسئله است که خدا در مراحل وسوسهی که منجر به گناه و مرگ میشه کار نمیکنه. یعقوب به ما میگه که گناه هیچ مزیتی نداره اما در مراحل آزمایش ایمان که منتهی به اعتماد در ایمان و پیروزی ایمان میشه این مزیت هست که میتونیم تاج حیات رو به دست بیاریم خدا میتونه در اون سناریو کارهای زیادی بکنه اما هیچ چیز خوبی در مورد مراحل گناه که منتهی به مرگ میشه وجود نداره اون حتی از جانب شیطان هم نمیاد سرچشمه اون درون خود شما هست من و شما مشکلی درون من داریم و باید با اون مشکل مواجه بشیم و اون رو حل کنیم اما ما نمیتونیم به این دلیل که عیسی به این جهان آمد تا هدیه نجات از قدرت گناه رو به ما عرضه کنه در جنببندی اولین باب از رساله یعقوب این رهبر روحانی بزرگ نسل اول کلیساهای عهد جدید سه موضوع رو مطرح میکنه یعقوب به ما میگه که چطور میتونیم در زندگی آزمایش بشیم چطور میتونیم برای گناه وسوسه بشیم که منتحی به مرک میشه و سرانجام او میگه چطور ما میتونیم فرق بین آزمایش و وسوسه رو بدونیم وقتی باب اول یعقوب رو مطالعه میکنید به این سه موضوع توجه کنید ملاحظه کنید که یعقوب میگه چطور میتونید در زندگی آزمایش بشید بعد ببینید او میگه چطور میتونید به گناه وسوسه بشید بعد از روح القدس بخواهید که در قلب شما کار کنه و به شما فرق بین آزمایش که منتهی به دریافت تاج حیات میشه و وسوسه رو که به گناه و مرگ منتهی میشه تعلیم بده. باز هم شما رو تشویق میکنم که این کتاب کوچک رو همراه با دعا بخونید. آیا ایمان شما آزمایش شده؟ شما تسلی عظیمی در این کتاب کوچک خواهید یافت. آیا وسوسه ی به گناه رو تجربه کردید؟ این کتاب کوچک، این کتاب کوچک عملی چیزهای زیادی برای کمک به ما داره. این کتاب کوچک یعقوب رو مطالعه کنید دوستان آزمایش ایمان ما از خدا میاد و به حیات منتهی میشه وسوسه از درون ما میاد از حبیت گناه آلوده قدیمی ما و یا از شریر میاد و منتهی به مرگ میشه کلید پیروزی زیر پاهای روحانی ماست همونطور که معلممون گفت وقتی آزمایش میشیم باید محکم بیستیم و وقتی وسوسه میشیم باید فرار کنیم. دایما اینه که این ها شما رو در ایمانتون و راه رفتن با خداوند ما عیسی مسیح تشویق کنه. تا برنامه بعدی امیدوارم خداوند شما رو برکت بده و شما رو در آغوش پرمهرش حفظ کنه.